بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآلِه وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه جناني المرتبة الثانية الإيمان وهو بضعة وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إما تقل أذا عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان در بحث ایمان ما از اعتقاداتی که داریم در شرح تهاییم می‌خونیم. بحث اینه که ایمان در اهل سنت قول و عمل و اعتقاد. قول، عمل و هم همه مترکم ام شافعی میگن. اجمع الصحابة و بعد هم ممن ادركنا من اهل العلم ان ایمان قول و عمل و نیت. قول و عمل و اعتقاد. کلمه اعتقاد ما شرح اشدادی توضیح اشدادی دیگه نیاز به توضیحش نیست که چرا این کلمه اعتقاد رو آوردن اعمال قلبی کلا اون چیزی که متعلق به قلبه بهش میگن اعتقاد اون چیزی که قلبامم باید بهش اعتقاد داشته باشیم یا قلبا بهش ایده داشته باشیم یا قلبا بهش یا مرام روش روش باشه اینا بهش میگن مسائل اعتقادی دیگه نیاز به شرح توضیح نیست و استدلال هم کردیم به بحث این قضیه به بحث قضیه اعتقاد کل همون عقده و هست که علماء از فرموده خدا فعوا عقصمو بحبل الله جمعیان و لا گرفتن که اینجا حبل ریسمان نه ریسمان حسی هست بلکه ریسمان ریسمان معنوی هست یعنی <تصفح> اینکه ما محکم بچسبیم قلب من اون ریسمان قرآن و سنت گره بدیم اون چیزهایی که خدا از من خواسته بشیم و محکم قلبمون رو با اون ببندیم این چیزی, چیزی هست که ما فیرامون اون داریم صحبت میکنیم از مسائل اعتقادی یا مسائل ایمانی یا مسائل توشیدی اگر بخوام نامش بذاریم فرق نداره و هیچ مشاهات در اصطلاح هم نیست یعنی بخوام مثلا به فرض سخت بگیریم در این قضیه و لفظی را بر دیگری ترجیح بدیم مهم اینه که در معنا با هم متفق باشیم در بحث ایمان به خدا قبول داشته باشیم توشید علمی و توشید عملی الان کتی میخواد بگر معرفت و اثبات یا کسی میخواد بگ توشید علمی یا کسی بگه قصد و طلب یا ب توشید عبادات، یا ب توشید دوریت همشونوری یکییه. مرتبه دوم دو بعد از اینکه ما بحث اسلام رو داشتیم الان بحث ایمان بعدا میاد بحث احسان و ما میدونیم وقتی که بحث ایمان میاد و بحث اسلام میاد در یک جمله بحث ایمان و اسلام این دوتا کلمه هرگاه با هم بیان اسلام یک معنا پیدا میکنه و ایمان یک معنامه دیگری پیدا میکنه. اگر مفرد بیاد ما یا مجزا بیاد معنای هم دیگر رو در بر میگیره مثلا در لفظ لفظ ایمان تنها بیاد اندما المؤمنون خدا بگه مسلمانا هم شاملش میشن ولی اگر تو یک جمله بیاد با قالت العراب و امننا کل لم تؤمنوا و لكن قولوا اسلمنا اسلام یه چیز دیگه است ایمان یه چیز باید دنبال بگردیم که کجا در شهر اومده که ایمان چیه معنا معناش چیه و چه منظوری داره خداوند من؟ و اسلام چه منظوری داره اون چیزی که توضیح میده در بحث ایمان که معنای ایمان رو از اسلام جدا بکنه حدیث جبرئیله حدیث عبدالله بن عمار از پدرش ابن خطاب که جبرئیل و نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نشد و سوال پرسید از اسلام اسلام چیه گفت شهادتن نماز خوندن روز گرفتن تا آخرش گفت ایمان چیه گفت انت من بالله و و کتبی و رسولی آخرش ایمان به بق... الله و ملائکاش به پیامبرانش و کتابهای آسمانی تا آخر اون چیزایی که در بحث ایمان مد بس ایمان شد اون چیزایی که متعلق به قلب اعمال قلبی، اعتقاد قلبی نسبت به خداوند، نسبت به ملائکه، نسبت به پیامبران، به خداوند، کتاب‌های آسمانی و روز آخرت و قضا و قدر خداوند خیرش و شرش. اعمال این همه اینها برمیگرده به قلب. اما اسلام چی شد در این حدیث؟ اسلام شد اعمال ظاهری از نماز خوندن و روز گرفتن و نطق به شهادت اینها شد اعمال ظاهری. بس بقالت العرب و قالت العرب آمینه نفی ایمان نفی اصل ایمان نیست نفی اون ایمان اعتقادی هست اون ایمانی که در ازای البدحیات. چون خداوند اونها را مسلمان خطاب کرد ولی قول او نه مسلمان هستن. این یک از مطالبی هست که ما در بحث ایمان قبلا خوندیم و الان از باب مذاکره فقط گفتم با سریع از این قضیه رد شدم. از مطالبی که ما الان مهمه برامون در بحث این حدیث حدیث که ایمان اصل و چند شعبه هست؟ انی اندی وقتی گفت بغع بغع از ستا شروع میشه تا نهتا یعنی بین اقتاد تا اقتاد نه شعبه هست قسمت یعنی ایمان یک قسمتش که شروع میشه اینجا فعلها قول لا اله الا الله قوله به بعد گفت و ادنها ایماتتو الاذا اون خارخاشاک یا بقول معروف اون سنگ یا چیزهای دیگه که سبب آزار بردم میشه از جلو مردم بعد داریم تا مردم نشن با دست عمل جواره حمد اولی قول به زمان بعد عمل جواره بعد تو بالحیا و شعبتون من ایمان حیا هم که جزء عمان قلب یا قسمتی از قسمت های ایمانه پس ایمان افتاد و اندی قسمت داره قول به زمان یک قسمتشه که از مثالش که از جمله مثال هایی که بزده میشه برای اون همون قول لا اله الا الله که ما یا شهادتین که ما وارد اسلام میشیم آزار و اذیت از مردم دفت کردن کنار گذاشتن که اعمال جباره هم قسمتی و اعتقاد و یا اعمال قلبم طرف دیگر و اونم حیاک از ایمانه حالا اشتایم می پردازیم این قضیه به بحث به قول بحث حیا منظور از حیا چیه خب بعد آخر بحث بهش میپردازیم. قبل از که ما وارد مسائل جزئی بشیم اون چیزی که برامون مهمه در این قضیه الان ایمان رسول صلّى الله عليه و سلم قسمت بندیش میکنه یه قسمتش قوله خب ایمان چرا تی به قول داره یه قسمتش عمله خارف و شک از جلو راه برداری داری و به به ایمان داره ایمان ال ایمان هو برگه اونا سب شعبه ایمان این چند قسمت میشه ایمان چه تی به حیال داره چرا تی بین این یعنی کی کی رمزی هست که اینها را با همدیگه بسیم میکنه چرا رسول صلی صلّى الله عليه و این قسمت ها را به ایمان میده ما اگر این حدیث رو، این حدیثی که ثابته و صحیحه از رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر دقت دقیق بکنیم میدونیم که فرق بین اصطلاح لغبی و اصطلاح شرعی ما اصطلاحاتی که داریم کلا در شریعت بحثش میشه یک اصطلاح لغبی داریم یک اصطلاح شرعی داریم یک اصطلاح غرفی نماز در اصطلاح لغبی یعنی دعا ولی در اصطلاح شرعی اون ارکان و اون واجباتی که انجام میدیم با هیئت خاصی با رکوع و سجده برای خداوند این نماز شرعی هست وقتی خدا میگه اقیم الصلاه منظورش نماز را برپا بدارید، نه اون نماز لغو شی دعا بکنید یعنی چی این نماز بکنید با اون ارکان در سر وقتش اون چیز که خداوند از مخصوصاً لوکما را ایتمونی این, این نماز شرعی هست پس اینجا وقتی که داره ایمان را تعریف میکنه رسول الله علیه و سلم با این جزیات با این تقسیمات تعریف چی میکنه تعریف شرعی ایمان در شریعت یعنی این قول عمل اعتقاد این تعریفی که رسول الله صلی الله علیه،, علیه و علیه تاکید مندی که رسول الله صلی الله علیه و علیه ایمان را روش انجام میده یعنی تاکید بندی که میکنه از ایمان واسه این مسئله مهمیه و قران هم دلالت میده بر این قضیه جاهای مختلف مثلا به فرض در بحث قول که ما داریم مثلا قول لا اله الا الله قوله قران میگه قولوا آمنا بالله بگید یعنی با اعتراف بگی رسول الله صلی الله علیه و آله گفت: عمرتان نگذارید الناس تا شهادت دهند ان لا اله الا الله شهادت ربهگان نطق ده زبانه قول به تنهایی هم قابل قبول نیست قول به تنها که انسان بگه آقا من اقرار میکنم به توحید خداوند یعنی اعتقاد به خدا در من وجودی که خداوند از مسائل اعتقادی خاصه از من من قبولش دارم ولی که قابلان یا تو شک دارم یا مثلا بگه بعض از اینا را قبول ندارم. اینجا هست که واسه نفاق در ما میاد. بعضی چیزا را قبول میکنم که واسه یهودی دیگه نو بعضی از کتاب مبادی ایمان میارم، بعضی دیگه ایمان اینطوری نمیشه. این ایمان قابل قبول نیست. این صفت صفت منافقینه. یقولون بالسانتهم ما ليس في قلوبهم. یعنی با زبانشون یه چیزی میگن. فقط یعنی ادعا میکنن ولی که قلبا اون چیز را قبول ندارن. درسته یعنی ما میگن ما مسلمانیم ولی که اون چیزی که اسلام ازش خاصه از نماز از روزه یا از اعمال قلبی ترس از خداوند محبت خداوند این چیزها درش نیست و من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم تحب الاولادين امنوا اشد حبا لله حب بخدا مومنین حبشون نسبت به خدا قابل قیاس با مشرکین نیست اونها بوده خودشون های خودشون مثل خدا دوست داره مثل خدا تعظیم میکنن بلیک مومن حبش نسبت به خدا خیلی شدیده خیلی محکمه خیلی خدا را دوست داره حاضر نیست خداشو با کسی دیگه عوض بکنه و الذين امر اشد حبلا الله حبش نسبت به خدا خیلی شدید تره بس این بحث مهمه حب امن یک مسئله قلبیه یک عمل قلب باید باشه نه اینکه انسان مثلا وقتی که شعیره جهاد اومد منافقی نندند حب خدا را داشتن ظاهرا میگفتن ما مسلمونی چرا خداوند سرزنش کرد کلیم ولغلان نمو میام را ابن ربیع چنان تو دسته ی بخاری اومد وقتی که به جهاد نرفتن در جنگ تبوک چرا سرزنششون کرد چون عملشون خلاف قولشون بود خلاف ادعاشون بود خدا اومد سرزنشو رو کرد نکوهش کرد رسول الله صلی الله علیه روز حجرش کرد و الستر ثلاثه الذین خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بالمراحبه دنیا برشون شد چون رسول الله تنبیهشون کرد لازمه قول اعتقاده لازمه قول عمله بدتر می قول به تنهایی ابلیس نه که قولا بلکه اعتقادات حتی فرعان قبول داشت مگر خداوند در قرآن در جایی مثلا در مثلا شما شما در کتاب ها بخونی و میبینی که مثلا تعریفی که میکنن بعض متکلمین و فلاسفه میگن ایمان یعنی تصدیق به معرفه یعنی شناخت یعنی عرفان یعنی تنا چیزی که میگن تعریف از ایمان میکنن حالا بعضی اشون حالا ما اینجا داریم به زبان تنها بعضی ها میگن نه ایمان این شرط قلبی چون در لغت بوده به معنای تصدیق و صدق میگم به پروردگوی خداوند در قصه برادران یوسف و ما انت بالمؤمنین دانا باشه که به پدرش رو گفتن بحث شناخت و عرفان بحث اینکه که ادعا بکنه که من خدا را قبول دارم تنها یا مثلا باور دارم قولاً بگه که من اين اين چیز این چیز باور دارم ولی عملا عملاً نقضش بکنه این چیز تو بخور نیست اصلا مثل فرعون وجحد بها و استيقنت هم. یاقین داشت بر او اعتقاد قلبی داشت خدا داره میگه بس ای قنطره یعنی یاقین داشت قلبی شم داشت نسبت به خداوند ولی که جحود کرد استکبار کرد مثل ابلیس قال ربي بما اغويتني میگه خدای من بر قبول نداش اقرار هم داره میکنه به زبانش ولی که این عرفانش این شناختش به نخورد و هرگزم به ادعای هیچ کسی نمیخوره که انسان فقط ادعا بکنه قولا بگه ولی از لحاظ عملی، از لحاظ اعتقادی، بهش پایبند نباشه پس قول به زبان وقتی که انسان بیاد قولا اقرار بکنه ولی عملا چه عمل قلب و چه عمل جوارح انجام نده فعلش به مناققینه یقلونه بلسنته ما لیسه في قلوبهم فقط زمانا دارم میگن. اگر قول اقرار قولان بفت قولان بفت داش داش بقول که یعنی قولا گفت قولا گفت و قلبنا یقین داشت عرفان داشت بقول فلاصفه و ولی که عمل جوارح نداشت عملش ضد اون اذا اقرار هست یا ادعاش هست اونجا هست که فرق دیگه با فرعون نمیکنه چون خداوند از فرعون نقم میکنه که یقین داشت نسبت به خداوند ولی به دردش من ما بخوام یعنی مثال سوال بزنیم از آیات قرآن که دلالت رقی حتی که حدیث خودش دلالتش واضحه در تعریف ایمان که ایمان اینجا رسول الله صلی الله علیه و وسلم که داشت سیمندیش میکنه قول, قول و عمل و اعتقاد ادله قرانی بر این مساله گفتم زیاده قبل اینکه ما بریم به قسمت یعنی بحث عمل قلبی یک مسئله مهمی هست و من همیشه اشاره میکنم بهش اون فهم اشتباه اون اونم اینکه حالا من گفتم اینجا ایمان و رسالت اصلا داره تعریف اصلاحی میکنه تعریف شرعی وقتی که یه چیز شرعاً داره تعریف میشه ما دیگه حق نداریم تعریف لغویش بگیریم متاسفانه اینجا اونا میان در بحث ایمان لغت و حاکم میدونن در صورتی که همون لغت هم کمکشون نمیکنه یعنی ایمان در لغت غیر از تصدیق تصدیق ظنی یعنی غیر از اون چیزی که اونها ادعا میکنن یعنی مثلا استدلالشون به اینکه ایمان در لغت به معنی تصدیق مجردی خدا ما انت مؤمن لنا اشتباس ما میدونیم که تصدیق بر امور حسیه به معنی میگیم تصدیق کردیم باور داریم که اب یا قبول داریم که اب در آسمانه ولی ایمان در مسائل غیبیه ایمان به داریم ندیدیم ایمان به خدا داریم ندیدیم ایمان در مسائل غیبیه ایمان زدش کفره ولی که تصدیق ضد تکریبه فرق داره در لغت با هم یعنی فروغ که بین ایمان و تصدیق هست خیلی زیاده و اینجا اگر شما دقت بکنید و ما انت بمومن الا لله خداوند چرا اینجا کلمه ایمان رو به کار برد در بحث برادر ویسو؟ چون یعقوب علیه السلام شاهده اون گرگی که ادعا کردن برادرمون رو خورده شاهد و قضیه بود بخاطر همین چی گفت چی گفت و ما انت بمومن خداوند نگ بمسد چون مسئله غیبی بود بس این فروغی هستی ما باید بهش دقت بکنیم ایمان در اصطلاح فراتر از کلم تصدیقه تصدیق تذسیخ همراه با اقرار با اعتقاد با اطمینان. نه اینکه انسان فقط بقال معروف بیاد بگه که من تصدیق کردم بلفرزم اگر ما بگیم تصدیق یعنی بلفر. بلفر بگیم ایمان در لغت تصدیق و شرعنم تصدیق ایا تصدیق فقط با زمانه یا اینکه شامل اعمال جواره میشه تصدیق شامل اعمال جواره هم در شریعت میشه؟ اگه ما بفهمنیم که ایمان تصدیق تنهات مگر الله صل الله عليه و سلم نمیفرمایه العین تزدی وزناها النظر والید تزدی وزناها البصر تا آخرش کر الله صل الله عليه و سلم میفرماید وال والقدر تزدی وزناها السبع بعد میفرماید والفرج يصدق ذلك كله او یکذب و فرق میکنه یا تصدیق میکنه؟ فرج شرمگاه انسانه روزوی از اعضای انسانه از جوارح انسانه ولی که شر اومد نسبت چی بهش داد نسبت تصدیق بهش داد پس اگر بگیم ایمان در لغت و در شر به منای تصدیقه تصدیق به اعمال جوارح هم برمیگرده یعنی اعمال جوارح هم تصدیق دارن برای خودشون پس اعمال جوارح باید باشه نمیشه که انسان فقط قولن بگه واعتقادا بيك من دارم ولكن عمل نميكنا بعد همراه عمل باشه. قد آن در قرآن مفرمز إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت بحث حراسة ترسة مؤمنين كسانك كي إيمان دارن وقت آيات خدا مش من قلبشون ترسان مشه حراسان مشه ميترساً از خدا وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة إنما المؤمنون ايه بعد الَّذِينَ يقيمون الصَّلَا ومن رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ مؤمن تيه؟ مؤمن عمل قلب انما المؤمنون الَّذِينَ إذا ذكر الله واجلت عمل قلب ترسه از خدا حراس از خدا انسان باقدرشته واشه بذلك الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَا يعني همراه قول همراه اعتقاد بها عمل واشه و بتنهايه بدارت لم يخوره قول به تنها یا اعتقاد به تنها یا قول و اعتقاد با هم تن به تنهایی به درد نمی کرد. بلکه همراهش باید عمل باشه بعضی ها خسلق از متکلمی میان مثلا در همین قضیه بحث ایمان چی میگن؟ میگن مثلا فرض خداوند در بحث عمل که جدا میکنن میگن ربطی به ایمان نداره و این آیات را تعبیل میکنن مثلا اینجا قدرا میگه مثلا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتكم ایمانا خب در مقابل عمل قلب در مقابل عمل جوارح ایمان زیاد میشه وقتی که مشکل با عمل پیدا کردن گفتن عمل از ایمان نیست گفتن پس در نتیجه با عمل ایمان کم زیاد نمیشه خب پس چرا خدا خداوند گفت اذا تليت عليهم اياته زادتكم ایمانا پس چرا گفت ایمان زیاد میشه گفتن که نه این زیادی زیادی ایمان نیست بلکه زیادی چیه؟ زیادی عدد مسلمان ها زیادی تعداده یا زیادی علمه یعنی علم اونها داره افزوده میشه سبحان الله یعنی زیادی خود ایمان شخصی یعنی ایمان خود شخصیت نمیشه گفتن نه باید این محسوس را تعبیل بکنیم چون اگر بگیم عمل جزی از ایمان ایمان میشه حقیقت مرکب قول یک قسمتش عملیه قسمت دیگر حقیقت مراکب یک قسمتش بره همش از بین میره. مثل عدد از ده یکیش برداری دیگه ده از بین میره. خب چرا اومدید؟ گفتید که ایمان حقیقت مک چرا گفتید عدد؟ حالا هرچ که اگر یکو تو برداشتید از ده نهش باقی مونده همش ق از بین نرفته. خب چرا نیمدید نیم مثال آب عب بزنید آبی که توش آب میرین خب یکم کم آببد اب شد؟ آیا کل آببد ب میره توی اون اب؟ چرا میاید شما هي مثال میدین جزء ایک آب در نظر بگیرین آب توش بریزید اگر جزء از آن آب چکیده بشه آب کل اون آب از بین میره توی اون آب خیر بس حقیقت مرکب آب بلاغی آب این حقیقت مرکب اگر جزء راه کلش میره نه میره چرا شما میاید تو زهن خودتون گذاشتید نه مثل دو تا جسمی که با هم دیگه ترکیب شدن اگر این دو تا جسم از هم دیگه جدا بشه, بشه، دیگه حقیقتش اصلا حقیقت میره اینجوری نیست عمل یک تیکه نیست که ما میخوام بگیم با یک تیک کل ایمان از بین میره این مشکلی شده قاعده ارسو وقتی که حکم یعنی تحاکم میدن بر نصوص شریعت در اشکال و تناقض میفتن مجبورن دیگه تعبیر بکنن نصوص رو نصوص قابل تعبیری شما این نصو تعبیر کردید و, و ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم ايكم کدام یکی از شما زادت هو زادت ایمانه کدام یکی از شما این آیات ایمانشو زیاد که یعنی هر فرد تو نگو فاعدادتون زياد شد نقف علمتون ايكم زادتو ها ايه ايمانا فاما الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ايمانا وهم يستكشرون يعني خود این چيزها ايمانشو زياد میکنن غير از این که ما يعني در شريعت داریم که خود خضابان در قرآن خصوصا از اعمال بانوان ايمان یاد میکنه. وقتی که صحابه طرف بيت المقدس نماز بخوندن وقتی که قبل عباس شد بطرف ماكی خب دلتان شدن اسم اون نمازشون رو گذاشت ایمان و ما که ادالله لیضیعه ایمان نکن خدا باید هیچ وقت اون ایمانتون نمازتون هیچ وقت ضایع نمیکنه ضایع زایه نمی تازه از بین نمی بره حدر یعنی محسوبه اسم نماز رو گذاشت که عمل جوارح اسمش گذاشت ایمان پس باید ما اصطلاحات شرعی را با ادلی شرعی اصطلاحات شرعی را با ادله شرعی تأثیر بکنی. و این حدیثی که اینجا اشاره بهش بیکنه که ایمان چامل قول و عمل و اعتقاد این حدیث سریحه در این تقسیم بندی و آیات قرآنی که ذک شد دلالت بر این قضیه میده که ای ایمان تنها قول نیست بلکه اعتقاد قلبی هست و عمل جواره. و ضد اونم ضد این ایمان کفره یعنی کسی ایمان نیاره به این چیزها ملزق خودشو ملزم, ملزم نکنه دیگه کافر میشه و من یک قرب بالله و ملائکته و كتبه و رسله و اليوم الاخر فقد ضل ضلالا کافر بشه به خداوند ملائکش کتابهاش این شخصی گمراهه خیلی گمراهی شدیده ضد ایمان تستی چی کفر یعنی اگر شخص ایمان نیاره و خودشو ملزم نکنه به شریعت رسول الله صلی الله علیه و الیهم من ملزم نیستم این کافر شده این شخص در قرآن زیاد کلمه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 شعبه هست قسمت هست بالاترینش لا اله الا الله که انسان با اون کلمه وارد اسلام میشه پایین ترینش آزار از یاد دور کردن خار و دور کردن از راه و حیا و شعبتو من الیمان یا شعبتو شعبت من الیمان حیا که شرم قسمتی از ایمانه شرم شرم از خدا شرم از پدر مادر شرم از بزرگتر نه شرم در مقابل حق یعنی طلبه بگه من روم نمیشه شرم می کنم که سوال بپرسم نه اینجای شرم مذمومه شرمی که ممدوشه شرمی که خوبه که اون شرم در مقابل بزرگتره اون شرمی که ادب رو بیرسونه ادب و شرم یکی از شعبه های ایمانه که گرده به قلب وقتی که من قلبا شرم دارم از خدام روم نمیشه که یک نماز سر وقت نخونم با جماعت نخونم این شرمه عمل قلبی شرم دارم از خدا میتسب خدا مزمن رنجیده بشه شرم دارد از خدا وقتی که انسان میخواد دچار گناهی بشه شرم میکنه از خدا شود خدا از من برانچ شاید خدا از من نوراحت بشه شرم میکنه از خدا این شرمه مبدوحه این شرمه که باید در قرب هر مؤمنی باشه که شعبی از شعبی ایمان قسمتی از قسمتی از قسمتای ایمانه باید در هر مؤمنی باشه باید از خدا شرم بکنه شرم در مقابل والدینم هم میتونه باید شرم بکنه صداشو بالا نبره ولاتقل له ما اوفه باده انسان شرم بکنه این شرمش سبب میشه که اعمالش درست بشه اگر این عمل این اعتقاد این باور قلبی این مرام قلبی اگر اصلاح نشه شر نیاد ترس ترس نیاد محبت نیاد اگر اینها اصلاح نشه ما مثل منافقین میشیم کسی که شر نداره ان لم تفتح الرسول صلی الله و آله کسی که شر نداره هر کوری دوستاری انجام میده کسی که شر نداره دروغ میگه صفت منافقی در حساب بیاد اذا حد ده ده؟ آیتو المنافق الثلاث او اربع اذا وعد اخلف اذا اتو منخان؟ یعنی خلافه بعد انجام میده، دروغ میده، خیانت میکنه اینها نشانه های چیه؟ نشانه های نفاق ادعا داره مسلمانه ولی کلبا حیاء نداره از خدا شرم خدا نداره این شخص دیگه بقول معروف داره تظاهر میکنه که مسلمانه بلی اون باورش حقیقی نیست این مسئله مسئله خیلی مهمی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم اینجا اشاره بهش میکنه بل حیاء و الحیا شربه من الایمان حیا شعبه ای از ایمان است بس این قضیهات خیلی درشت دقت بکنیم که تفاوت بین ما مؤمنین و منافقین این خلاصه بحث امروزمون یعنی من صرف فقط دور کردم اون چیزی که در تهاوی میخونی ولی هر که گزارا خیلی گزارا بود مفصلش در تهاوی نه اینجا ان الله بعد از اون دیگه میریم به بحث ارکان ایمان چون اینجا بحث ایمان اومد دیگه بعد از اون دیگه بحث ارکان ایمان خواهد اومد و اونم بحث ایمان به الله، ایمان به ملائکه که سعی میکنیم کنیم بازم گذرا قسمت به قسمت عبور ازش بکنیم و صلی الله علی محمد و علی آل محمد